بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض کنم خدمت اوزار محترم خب امروز من یه پرزنتیشنی هم دارم که در واقع میخوام با هم دیگه مسیری رو که ما طی کردیم از های 80 در واقع اگه بخوایم دقیق بگیم از سال 83 شروع کردیم یا فعالیتی رو در قالب پروژه خودروی خورشیدی که حالا بعدا ما مرکز طراحی و ساخت قزال ایرانی را رو روشن گذاشتیم این مسیر رو با هم از سال 86 तय کنیم خب اولا اسم این خودروی خورشیدی رو ما قزال ایرانی گذاشتیم به خاطر تیزپاییش، زرافتش و زیباییش خودروی خورشیدی ملزم کنید که اولین این بوده که در کشور در با, با, این،, با این تکنولوژی ساخته شده در خاور میانه و سه چرخ داره و روی چرخ عقبش یک موتور الکتریکی هست و اصولا این نو خودروها رو میشه به خودرو الکتریکی هستن و همونجوری که ملاحظه می‌کنید سطحش یه سری پنل‌های خورشیدی هست که نور خورشید که بهش می‌تابه این تبدیل به الکتریسیته میشه در باتری ذخیره میشه و به موتوری که روی چرخ عقب هست اصطلاحاً این موتور این ویل یعنی خود موتور با چرخ در واقع یکسان یک بارچه هست بر می کرد. و میچر. این هم تیمی بود که ما تشکیل دادیم حالا همج که سخنران قبلی هم اشاره کردن معمولاً در شروع کار موانع بسیار هست و هیچ چیزی وجود نداره که بشه ازش استفاده کرد. ما این تیم هشت نفری رو در واقع تشکیل دادیم حالا مطالبی که تو اسلایدن میاد خود کنم که شما خودتون نگاه کنید و حالا ممکنه صحبت های من به هل معروف سینک نباشه کامل با این بحثایی که اینجا میشه البته من اینو سید کرده میدم که روی 17 دقیقه بره ولی ظاهران یه ذره سری داره جلو میره. میره بله. این ساعت رو کنم کار نمیکنه اگه من پشه ببینم چون فکر میکنم این خیلی داره با سرعت جلو میره حالا به هر حال ما سرف نظر از این که این سرعت چقدر هست من این صحبتهای طبعه شما بکنم ما ست تا خدره قرشیدی در موقع ساختیم که این برند غزال ایرانی رو هم روش میگهر در واقع ایرانی یک، غزال ایرانی دو و غزال ایرانی سه در خیداری کار هم این گفتم موارد بسیار خوده ولی من یه نقل قولی کنم که به صلاحی گفته هست که میگه اگر در واقع یه ایده جدیدی مطرح بشه، یه مسیر جدیدی در واقع ارائه بشه یا اینکه یه فردی که مثلا خیلی مغوغ زیادی داره این به خاطر خودش رو مطرح بکنه اصطلاحاً یه اتهادیه‌ای از ابلهان علیهش تشکیل بشه اتهای ابلهان در واقع کسانی هستند که در مقابل ایده جدید نو یا اون فرد بنامره نیستن خب اینو ما در مسائل مختلف شدت دیدیم اتفاقاً یه کتابی هم هست که من توصیه می‌کنم بخونید کتابی هست که جایزه نوبل برده به همین نام هم هست. نمیسنم یک شخص آمریکایی هست که اتفاقا دوازده سال بعد از اینکه فوت کرده این جایزه نوبل برده. اون تیم ای که در با ما تشکیل دادیم یه تیم هشت نفره دانشجویی بود که جالب براتون بگم که یکی از اونها الان یه شرکتی رو در واقع خودش موقع استارتاپش زده، تبدیل شده به کارآفرین. و شرکت سروه هیدرولیک بشناسی آقای همتی و حتی توی جشباره های کشوری همیشون به عنوان کارآفرین نمونه شناخته شده حالا کاری که ما هدفمون شاید بوده توی این شروع فعالیت این بوده که این مسیری رو ترسیم کنیم که دانشجوهای در واقع دانشجوی مهندسی مکانیک و دانشجو فنی در دانشگاه تهران بتونن بیان تو این پروژه، تو این مسیر قرار بگیرن و از این فرصت ها استفاده بکنن و احیانا از کنارش بتونن در موقع استارتاپی رو شروع بکنن. همونطور که علمدن خدمت خواهم گفت که در انتها چه اتفاقی افتاده خب این اسلایدی که مشاهده می‌کنید اینجا علی اساتیدی گذشت خود خورشیدی دو بود که نشون داد یه پرشن هم بغلش اومدی بود می‌خواست که مسابقه بده. تازه ترفتش بر نمیاد واقعا. اینجا در واقع در استرالیا بود شهر ادلید که پایان مسابقات بود که خودرو خوشیدی دو ماه اینجا شرکت کرد. اون اسماعیی که دیدید حالا اخبار مختلفی رو بیان کرد که حالا من جزئیاتش رو نمیگم ولی مثلا یه نمونهش خدمتتون بگم اون پروژه اولی در واقع سرسختش خیلی پیچید حتی در جهان و یه دربتنامه از دانشگاه امایتی، حتی برای تیم ما اومد که همراه با پونزه تیم از سراسر دنیا در واقع جمع بشن، تو دانشگاه امایتی و یه کنسسیومی تشکیل بدن و چهار تا خودرو رو تراحی کنند و بسازند و, و البته ویزا نتوسته بگیر تیم ما نرفت ولی ما مسیرمون رو ادامه دادیم و خود دومی دو رو ساختیم و بعد خودرو در واقع سومی رو شروع کردیم یه نکته ای که لازمه به اشاره کنم که تو این استارتاپ حالا مهم هست کلان تو بحث کار آفرینی تو کسایی که میخوان برن و شروع کنن این فعالیت ها راه اهمیت داره این هستش که من همیشه تشبیه میکنم در واقع یک محصول و یک درخت در واقع محصول میوه اون درخت است یه تنه ای داره و یه ریشه ای داره و این معنیش اینه که ما اگه یه محصولی تولید کنیم ویا از که اول ریشه ایجاد بشه چندین سال طول میکشه این ریشه در واقع رشد بکنه تبدیل به درخت بشه و بعد نیواره رو به ما بده. صنعتم این شکلیه، این که ما بریم به صورت تنکی در واقع محصولاتی رو وارد کنیم، کارخونش رو وارد کنیم، این معنیش اینه که ما یه صنعت بی ریشه رو ایجاد کردیم. این اقتصاد دانش بنیان و مسائلی که امروزه مطرح هست و روش تأکید هست. در واقع معنیش اینه که ما باید کارهایی رو در طول سالیان انجام بدیم که این ریشه رو ایجاد کنیم، این ریشه تبدیل به درخت بشه و بعد میوهشو بسازیم. به سادگی ما نمیتونیم یک چیزی رو تجاری سازیش بکنیم. بنابراین من تصورم این هستش که این فعالیتی که ما شروع کردیم در طول سالیان گذشته در واقع ریشه شد هست و جهت اطلاعاتون حدود شاید نزدیک به 100 تا به حال از تو این مسیر عبور کردن و البته دو نفرشون تونستن کسب و کار مستقل ایجاد بکنن ولی ما امیدواریم که همینجور که جلو میریم و این محصول ما تکامل بیشتری پیدا میکنه ظاهرن اینم گیر کرده اینجا و جلو نمیرن خب این هم اگه ملاحظه کنید در واقع نشون میده که سرمایه بزاری که تیم های مختلف از سراسر دنیا روی این محصول انجام دادن چقدر هست و ما اون سال 20000 دلار انجام داده بودیم ولی بعضی تیم ها 4 میلیون دلار 5 دو میلیون دلار و البته اون سال ما رتبه خوبی هم نگردیم این مسابقات استرالیا دو سال یه بار برگزار میشه و یه مسیر 3000 کیلومتری رو از شمال استرالیا به جنوب استرالیا تیم ها باید برن و مثلا 8 صبح مسابقه شروع میشه 5 بعد از ظهر تموم میشه هر جایی که تو اون صحرای استرالیا شما رسیده باشید و توقف کنید، کم کنید و دوباره صبح حرکت بکنید این مسیر رو در واقع تا حالا ما دوبار رفتیم یه بار با خودرو اولی یه بار با خودروی سهوامی دومی و سوم. این هم در ماه پروژه دیگه ای هستش که تو مرکز ما انجام شده که یه خودروی برقیه کاملا برقی طراحی بدن و شاسی هست. از اعضای تیم ما بوده و خب بعضی قطع هستشم اصطلاح هم میگن از دیگه. وشن اسپل. اینم در واقع تیمی بود که در سال 88 89 تیمی دانشویی ما بود. یکی از اونایی که کسبو کار جدیدی انداختن تو این تیم هستش. این در واقع در ادامه هم کارهایی بود که حال ما انجام دادیم و یک پروژه دیگه هم در واقع پروژه ترکتور هیبریدی بود که این هم پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در واقع انجامش داد. من مشاورشون بودم. دانشو دکترا بود. ده. حال شما میدید این جور کارا کارهای مهندسیه. وقتی شما یه پروژه دکترا می‌خواید انجام بدید، باید کار علمی خیلی پیشرفته‌ای انجام بدید که هیچ جای دیگه تو دنیا نظیرش نشده باشه. اگه ایشون فقط می‌خواست یه تراکتور هیبریدی درست کنه، این خیلی در واقع چیزی نبود که بگیم مثلا پیشرفت قابل ملاحظه علمی درش است. ولی ایشون روی بحث‌های خیلی ریز علمی‌ش هم متمرکز شد و تونست در موقع یک مقاله ای رو چاپ کنه که تو در اسفایده بعدی خواهیم دید که 400 بار ارجاع خورده مثلا یک مقاله ای که 400 بار ارجا میخوره یعنی که یه مقاله کاملا پر استناد و معنیش اینه که در اون سرکولیشن علمی خیلی اهمیت زیادی داره خب، ما این روند رو ادامه دادیم و الان بذارین که حالا دو تا خودروی خورشیدی، خودروی بردی و این اینتراکتور در واقع هیبریدی ساخته شد. نهایتا ما سال 90 دوباره شروع کردیم روی بحث خودروی خورشیدی نسل سوم که قزال 3 اسمش گذاشتیم فعالیت کردیم و تا سال 94 ادامه داشت. توجه کنید که این پروژه ها پروژه‌های میلیاردی هستند. یعنی اون سالی که مثلا ما 200 میلیون خرج کردیم در واقع ما نشون بوده که 20000 دلار دلار اون سال یه همچین قیمتی داشته و خب ما هم که پیش رفتیم چون محصولمون تکامل پیدا کرده قیمتش هم خیلی بالا رفته این پولا هم ما نه رانتی داشتیم نه پارتی داشتیم کسی هم نمیشناختیم در واقع همه رو از حامیان مالی حالا چه دولتی چه خیر دولتی جذب کردیم مثلا یه شرکتی مثل ایران خود رو وقتی ما بهش مراجعه کردیم دفعه اول تو یه جلسه ای که پرزم کردیم مسخره کردن و گفتن که مثلا ما سمند اونو ده سال طور کشیده طراحی کردیم، ساختیم همه تو میدونیم که ما سمند هم که در بخشاش از کشور کشفر حتی ترراهی شده و ساخته حالا داخل ساخته شده ولی به و نهایتا تونستیم حمایتشون جلب کنیم و این هزینه ها رو همه رو انجام دادیم. maksudم اینه که یعنی در طول این مسیر که میریم حالا این عکس هم خیلی جالب هست که دو تا از اعضای تیم نشون میده که شب تا صبح کار کردن و صبح مثلا حدود فکر کنم 56 صبح خوابیدن این ساعت ده صبح من رفتم تو کار و عکسشونه یواشکی گرفتم. بنابراین نشون میده که انگیزه اینجا چقدر اهمیت داره که ما بتونیم به این برسیم چون هر دو سال بار برگزار میشه و در واقع یک محدودیتی گسشته برای ما و تیم‌های دیگه سراسر دنیا که خودشونو در طول این دو سال آماده کنن یعنی همه کارا رو انجام بدن. در واقع طراحی رو انجام بدن، جذب اسپانسر کنن، قطعات رو تهیه کنن، همه مسائل. با طوری که از تیم ما هم دانشجو هستن. تمام وقت اون پروژه کار نمی‌کنن. و لذا این یک حال کار جمعی و تیمی هست که من فکر میکنم که یکی از نکات مهمش در واقع همین بحث فعالیت تیمی هست، پروهی هست که ما در کشورمون کم داریم و باید روی اینها بیشتر متمرکز بشیم. من امیدوار هستم که در واقع این پروژه‌ای که ما شروع کردیم و داریم انجام میدیم مشابهش در دانشگاه‌های دیگه شروع بشه، همان که شروع شده. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی یه پروژه‌ای شروع میشه به این شکل، باید ادامه پیدا کنه. این مسیر بایستی که ادامه پیدا کنه بره جلو و به اون نتایجی که میخوایم در واقع برسه این, این نو پروژه ها رو ما پروژهای نیمی که یه جای شروع شه و یه جای تموم شه در واقع یه جای شروع میشه و ادامه پیدا میکنه انشالله امیدواریم که بره جلو و حتی بعد از عمر ما عمر این پروژه ادامه داشته باشه به محصولات پیشرفته تری برسه یه نکته که اشاره کنم ما در طول این مسیری که ما میاییم الان این خودرو غزالسه هست هیش رفتا قابل تجزیه داشتیم یعنی مثلا قزال 1 خودروی 3 چرخ تک نفره بوده سنگین بوده 60 کیلومتر در ساعت میانگین سرعتش بوده و مثلا شاید حدود 2000 کیلومتر طی کرده قزال دو نزدیک به 100 کیلوگرم سبک‌تر شده حتی اکثر سرعتش حدود 119 کیلومتر در ساعت بوده 80 کیلومتر در ساعت در واقع میانگین سرعتش بوده و نزدیک 2500 600 کیلومتر در واقع تهیه کرده و قزال 3 تبدیل شده به یک خودرو 3 چرخ دو نفره با دو تا موتور روی چرخهای عقب یعنی نسبتاً پیشرفته قابل ملاحظه همچون رو ملاحظه کنید این روند یعنی داریم می‌بینیم به سمت خودروهای تجاری خب یعنی این تبدیلش کنیم به یه محصول تجاری حالا اینم مستنداتیه که این خودرو توی مسابقات داشته مثلا در سرعت سباق شده فکر 135 کیلومتر اون به جایی که محل مسادقه بودش در داربین استرالیا یه لپو رو می در واقع و تایم میگرفتن اونجا سوم شد، تو همون لپ 135 کلومت تونست بره البته اون لپ که اونجا هست، مسیر مستقیمش کم هست و لذا نمیتونه خیلی سرعت بگیره اگه توی یه مسیر مستقیمی مناسب وجود داشته بشه ما فکر میکنیم که میتونه تا 1506 کیلومتر هم در واقع سرعت بره وقتی که ما از مسابقات استرالیا تیم ما برگشت جالب بدونید که حدود 300 نفر از دانشجویای دانشگاه تهران متقاضی بودن که عضو تیم بشن هم تو دانشکده مهندسی برق هم تو دانشکده مهندسی مکانیک و دانشجویای ما اعضای تیم که چند تاشون هم اینجا حضور دارن در واقع برای اینا این گذاشتن و مصاحبه کردن و از بین اینا یه تعدادی انتخاب کردن که حالا قرار هست که همراه تیم باشن و در یه مرحله ای در موقع اینا انتخاب نهاییشون انجام بشه یه اتفاق جالبی دیگه هم که افتادی بود که تقریبا بهار امسال ما اطلاع یعنی اتاق بازرگانی ایران و فرنسا یه زنگ زد به من خیلی تعجب کردم که مثلا اتاق بازرگانی خب ما استاد دانشگاهم بالاخره چه داره با ما گفتن که یه هیئت 8 نفره ظاهرن هستش یا شیش نفره که از فرانسه داره میاد و گفتن که ما میخوام با شما ملاقات داشته باشیم. من خب گفتم شاید اشتباه کردن با ما میخوام ملاقات داشته بشن برای گفتن نه اینا خودشون پیدا کردن حالا سرچ کردن توی اینترنت یا هر جا میخوام ملاقات داشته بشن اومدن و ظاهرا دنبال این هستن که مثلا در کشور ما بعد از قضیه برجام حالا یه سری کنن و فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیدا کنند. افرادی هم که تو این تیم بودن، افراد سرشناسی بودن، هم صاحب کمپانیایی بودن که در مثلا های VC هستن، بنچکت، کاتالیستن که در واقع کارشون این هست که سرمایه‌گذاری بکنن روی پروژهای ریسک‌ذیر و خب حالا امیدوار هستیم که allele منجر به به سرمایه‌گذاری و ادامه کار بشه. ولی این نشون میده که مثلا همچنین پروژه‌ای که حالا به ما خیلی مدقی نیستیم ولی در کشور واقعا بهش توجه نمیشه به این پروژه آنچنان ولی اون سر دنیا بهش توجه میکنن و حتی پامیشم میان اینجا ازش بازدید میکنن یک کاری هم که اعضای تیم ما به ابتکار خودشون انجام دادن تیم دانشوی ما بسیار با انگیزه و قوی هستند. در واقع من سخنگوشون هستم امروز این طور قائله بنا که این پروژه منه این پروژه تیم خودرو خود خوشیدی دانشگاه تهران هستش و همین الان 60 نفر عضو داره و الان بر دانشگاه مهندسی مکانیک و برق از دانشکده مهندسی صنایه و پردیس هنر دانشگاه تهران که طراحی صنعتی توش هست که نیاز هستش برای طراحی صنعتی ایده پردازی روی به اصطلاح بدنه خودرو اینها عضو مهندسی صناعی هم آرست دردم که اونس هستم حالا یه ایده خیلی جالبی که اجرا شد امسال در موقع یه طور داخلی بود که با ایده‌هایی که خود اعضای تیم ما به اصلاح ارائه دادن این طور برگزار شد یه طور داخلی از دریای خزر تا خلیج فارس خب دریای خزر و خلیج فارس راجب یوزفرنگم این روز صحبت شد در واقع اینها نمادهای محیط زیستی ما هستن باید ما حساسیتون به محیط زیست افزایش بدیم واقعا شاید پنجه سال دیگه خیلی جاها قابل زیست نباشه باید ما توجه کنیم به این موضوع تو پروژه هامون تو کارهایی که انجام میدیم و تو این پروژه ارز کنم که ما همین قضال سه رو خودرخورشیدی رو از بندر انزلی تا جزیره کیش از شهرهای مختلف عبور کردیم و در هر شهری هم یک پریزنتیشن دو ساعت بچه ها داشتن و اونجا در واقع به صورت چهره به چهره با مردم صحبت می و در واقع سوالهایی که اگه داشتن جواب می دادن حالا هدفی که ما از این دنبال می کردیم چند تا هدف بود یکیش این که این یه تستی برای خود روی ما بود که در شرایط مختلف جغرافیایی، آب و هوایی تستش کنیم و ببینیم که دیتا هامون چی هست که طراحی بعدی رو بر اساس این تست انجام بدیم. یکی دیگه همکاری بین اعضای تیم بود در یه شرایط تحت فشار، زمان کم، بندی فشرده و به اصطلاح های خاص و یه بحث خیلی مهمش که امروزه در دنیا مطرح هست بهش میگین مردمیسازی علم، این الان در سطح جهان مطرحه و در روش کار میکنن یعنی اینکه دانشگاه برای خودشون توی هیطه بسته خودشون کار نکنند. در واقع ایده های علمی و نوآورانه خودشون رو بیارن در جامعه و سعی کنن که آگاهی ایجاد بکنن. اگر ما آگاهی ایجاد بکنیم در مردم نسبت به این مسائل بعدش میتونیم حمایتشون رو داشته باشیم. و این یه سرمایه اجتماعی میتونه برای چنین پروژه هایی باشه بنابراین یه هدف مهم بشه بود خب اهداف دیگه هم مثل جذب اسپانسر و هانیان مالی هم داشت اینجا این اسلایت در واقع آخر سفر هست که در جزیره کیش بود و برای کیش در واقع این ارائه هم انجام شد خب بعد از این مسیر ما چجوری ادامه ادامه کنه؟ بعد از این در واقع مسیر ما خودرو غزال 4 هست که یه مقدار به اون بحث تجاری سازی باز نزدیکتر میشه این یه خدروی در هست، چهار نفره هست شکل ظاهریش هم حالا اونجور از این اسکچاپ پیداست داره میره به سمت خدروهای معمولی دیگه از اون شکل خیلی عجیب غریب داره میاد بیرون و این قرار هستش که سال 2017 در واقع در استرالیا، سؤل دياموسا که هر چند دو سال یه بار برگزار میشه شرکت کنه، ترجمه میکنه که اونجا توصیه یافته کشورات تیم میفرستن مثلا از آمریکا 6 تا تیم میاد حالا شاید این آمارم براتون جالب باشه که هر سال در آمریکا 100 تا تیم در واقع خودرو خورشیدی میسازن از سطح مدارسشون گرفته تا کالج ها و دانشگاه و همه اینا هم حمایت میشن از طریق اسپانسرای درمان خصوصی، واميان مالی خصوصی. خب این مشخصاتی هست که ما امیدواریم که روی خودروی چهارمی پیاده بکنیم همین الانم هم در واقع ما در اعضای تیممون افرادی رو داریم که علاقمند هستن در واقع کارآفرینی شروع کنن. یعنی شرکتی رو تأسیس کنن مثلا روی موتور بی که موتوری هستش که ما رو چرخه عقب استفاده می‌کنیم و در واقع و خود باش میرونیم. یا قطعات دیگه یا حتی خود خود رو الان ما یه خودروی کانسپت رو معرفی کردیم و این خودرو کانسپت قرار هستش که انشالله بره به سمت سازی که الان تو این اسلاحیدهای آخر من نشد رو میدم ولی نکته مهمی که حال تو این مسیری که ما تقیی کردیم وجود داره همینه که ما این فرصت رو در واقع فراهم کردیم برای اینکه افراد بیان و ایده هاشون رو مطرح کنند. یکی از نکاتی که ما توی کلاسام همونه حتی من خدا شخصا خیلی ذکر میکنم به جوون ها میگن شما ایده هاتون هرچقدر هم واقعاً مسخره به نظر برسه شد یا ایده ای جرعت نکنید، مطرح کنید اینو حتما مطرح کنید و ما حمایت میکنیم از این ایده ها و اینها میتونن تبدیل بشن در واقع به بحث هایی که تبدیلشن به محصول تبدیل بشن به, به, به و بتونین. تا اون چیزی که ما تو کشورمون واقعا همیشه نداشتیم و خیلی علاقمند هستیم که داشته باشیم حرفش هم زیاد میزنیم یعنی اون اقتصادی که مبناش دانش داخلی باشه و اون تجارتی که بر اساس های علمی خودمون باشه اینها رو بتونیم جلوبه بریم این هم, هم کانسپتیه که کردم خدمتون که در واقع یه خودروی هست که حالا سه چرخ هست البته چرخ دو داره و دو نفر است داخل شهر سبکه و انرژی کمی مصرف میکنه ما طبقه حالا شبیه‌سازی‌هایی که انجام دادیم مصرف سوخت این خودرو هیبریدش حدود 3 لیتر هست که مصرف بسیار پایینی هست 3 بر 100 کیلومتر و همونجوری که ملاحظه میکنید این در موقع برای های درون شهری هست برای استفاده درون شهر هست چون الان تو شهر ما خودروهای یتونی حرکت میکنن یه نفر سرنشین دارن سوخت فسیلی مصرف می‌کنن و هر سال ما آذر ما، آوا ما با آلایندگی شدید مواجه هستیم چقدر ضررای به سلامت جامعه و اقتصاد جامعه میزنه ما اگه بتونیم چنین خودرایی داشته باشیم که الکتریکی هیبریدی باشه چون آینده واقعا متعلق به خودروهای الکتریکیه و اینها را در سطح شهرامون داشته باشیم ازش استفاده کنیم به جای خودروهای سوخت فسیلی مشکل آلایندگی ها مشکل محیط زیست کاملا حل خواهد شد برها تشکر میکنم از توجه شما